اللهم بسم الله الرحمن الرحيم وانا لله رب العالمين وصلى الله عليه على محمد داره الطيّرين الطاجرين المعصومين واللا تضائم على دارهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتركين وارحمنا برحمةك يا رحمن الرحيم هرکنه بناسود حرق لحیه چون یک فوائد تاریخی لطیفی بود برای حدیث سیناسی فوق العاده مفید بود وارد روایات بیه ی حرق شدیم و حرق شعرد هرکنه ما تا اینجا دو تا عنوان داشتیم یکی حرق لحیه که حدی توضیحاتش خودش یکی هم مسئله موی سر در باره موی سر ارز شد که یک روایتی رو یک قصه ای و از امیر المؤمنین الله علیه اهل سنت نقل کردن برای ما هم واضح نیست که یه واقعی مثل آقا از کتاب کرده کتاب غذایه یا شنیده که آب داقی سر کسی و حضرت یک سال به او فرصت دادند و بعد هم موی و درمه آمد علیه بدیه از این روایت با این محض که در زمان حسنی واقع شده توی متون ما فعلا نیست حالا ممکنه بعد پیدا بشه علی علم از الله اما توی متون ما فعلا نیست اونی که در متون ما فعلا وجود داره با عنوان سوال از امام صادقه احتمال داره که نظر اهل کوفه این بوده که من هر چند بعضی از اون عبارات که در کتاب بوده حتی امام صادم نفی می یه به خیلی محل اطلاع شیعیان هم بوده دیگر نیه شیعیان مثل بقیه مستنونها ایام حد از خود کوفه احرام می بستن هی راه اصلا مکه و مدینه حتی بالی وقت بعضی بزرگان ما هم بودن مثل ابو همجه سومانی در داره که از از بیشون در مدینه در محکه چاست را این از, ما از این ما شده بودن از از کوفه ما قال علی روان علی که ایشون اینجور پرونده که تمام الحج شون تمام الحج در قرآن امرش آمده در عرض عمره عمرت و من تمام عمرت و الحج ان یهرم الانسان من دویرت اهل از خونش احرام برده ال... در نزوی کذب و علا علی دروگ بودن این مخلب نیست کذب و علا علی بقید نیست این بوده که در ایده از این روایاتی که در کوفه من چند بار هست که الان همیشه در ذهنتون باشه اصولا در اهل سنت مش اهل سنت به طور طبیعی حالا من میگم مرتضی مرتضی فقه کوفه رو به عبدالله بن مسعود و علی بن ابی طالب میذارن چون این دو بزرگوارن فقه مدینه بیشتر رو عمر هستند این اصطلاحی دارن به خودشون در اینها اون وقت اگر دقت بکنید گاهی شده که این مطلبی رو که با عنوانه از آیا یه همیان ترک کردن در امام سادم با این ترک بر امام سادم در قطع کنید دو نکته یعنی دو سه نکته شن نکته رو درست میکردن یک اولا اصل مطلب ثابت بشه دو که از همه مهمتره اون نکته بسیار بسیار مهم این از که این حکم رو چی رفته شون قوی اوقا یک است. یه شواق داریشی، یه خصوصیتی داره حتی شما هم امتحان میکنید. یه سؤال ازش میگم. یه همه استفساتو اولام. یک نفری بکشش اینجوریه، دخترش اینجوریه، زنیش اینجوریه، پسرش اینطوریه، امروز خونش اینطوریه، دیگه از دین داشت، فلان داشت. حجم جا نزدیک سنتانه، هر چه کار بکنه. تو میگی تا فرو، پنجشیش تا هر یه جواب نیاد. چه جوابو چه کار مال کدوم اصل مسئله چیه؟ این تشکیف خیلی مشکله یکی از مشکلات این ببینیدن اون رواید که بود نزبود رجلون، قبرنسی ها، مرقون آگوشی یا خورشی او سر کسی ریفته خب او سر کسی سوال باز بکن چشمش چی شد دماغش چی شد دهنش چی شد گوشش چی شد بعد از هستنید این رو یک سال بهشون فرصت دادن آیا این یک سال فرصت دادن جز احکام ثابت ببینید وقت اون نقطه ای که حضرت حکمه به دیه کردن این دیه مال شمال مجموع آب جوش رو سر آدم با رخصن موز یا این نقطه شرخصن موه ببینید این سؤال را الان سهل نزدی کافی اینطوره. اون قلتا ار رجل ید خلال حمام فیوسط یصب علیه صاحب الحمام ما انهار را و یم تائت شعر و رأسی فلا یم بود قال علیه دیه ببینید خیلی ذرافت به کار شده شیه اینجا تو سوالی اجل روز سر نمیواله ما یعنی چی باحال بگم میخوام بگم که اون اجل روز سر مال مرحله اجراز مال قوی رضایشت یک ماهه ممکنه به ده روز ممکنه به یک روز شناسایی بشه که این مودر زنه می اون عجله حوثنه مال یه خصائف اجراییه بعد اینجا صد کنید سب به علیه صاحب بلحمه ما انخارن فیمتعه تو شهر راسته. خیلی زریفه یعنی مخواهد بگیم نقطه زهاب شهره نه اینکه حالا آب دا سر سرشیخته شد پوست سرشیخته شد چه جواهدی ایجا کرد خون آمد خون نیامد به چشنش چه کار کرد به اروها شکار کرد به این مجلان شکار کرد به سبیل شکار کرد به خصم کنید این زرافت هایی یعنی بخواهد که من این نکته رو بخواهد بخواستم ولو فرض آبه هار کردین این آبه هار باید فرض بکنیم که اینجا مثلا دیره همدی بوده تا خطا درست بشه ببینید سب دهلیه ما انه هار رن سیمته یعنی چی؟ یعنی نکته سوال ذهاب شعر سوالو آیا که شعر راس تغدیه تن املا نکته گیره البته هر رو در جایی که عذ مخاطب نباشه باشه مخاطب شده خطا باشه صاحب حمام آب ده آورد دیگه ببینید وقتی سوال از بری جا نمی کنه شما نگید خب وقتی آب داغ رو سر آدم بریزن خب جادیگه هم داره بوش آدم هست چشم آدم از عبروی آدم است. این یکی نقطه پنی ظریفه. که مخواد به یه سوال در حقیقت اینه یعنی مخواد به یه سوال این ذهاب شعر رست بیه دار یا نداره نقطه شم ارز کردم چون بنای علما بر این بود خوب دقت بکنیم بیه اساسا در جایی باشه که ذهاب منافعه من یه توضیح سابقا نهارد کردم این هم اجمالا نهارد بکنم میگن از ابن عباس هم شده منم هم تو ذهنم همین طوره ما الان جرد جازم نیستم اون که از تورات نگاه کردم تو ذهنم این طوره. در تورات میگن دیه نبوده چون خیلی از احکام که در مدینه جرد شده نازر به تورات هم هست در تورات میگن دیه نبوده فقط قصاص بوده در روایات ما هم داره که دیه رو لاعقل دیه یعنی پرداختی بخیر به فارسی مراقل پرداختی از و عدای پرداختن این پرداختی هم در میان عرب متقاقض بوده حضرت عبدالمتالب رو سر تا شطور قرار داد. برای میاون به سه عبدالله و سمونه دارد برحال سور روایات ما داره که چند تا اصطنان رو پیر منبر سنان جدشون از عبدالمتالب رو بیشون امزا قرار دارد یکی توی مؤزم روایاتی هم که از رسول الله ما در قرآن هر این رو بله تو قصا ساخن بحث دیگه اشتباه نشه با قصا ساخن ما توی بحث روایات الان دواتی که از بیه قص... از در اعضاق و منافق کمه هر در شگاه جنو هست خیلی زیاد نیست حالا بحثی تو دیگه وقتی لذا تقیی کردن پاقای اهل سنت ادعا بخن که خیلی از قوائد رو رو قوائد درست کردی مثلا پیغمبر بی نفس سطح شد رو دید درست شد؟ آمدن گفتن که بیه این در بدن انسان هست. اگر چی باشه که زهابش مثل زهاب نفسه اونجا سطح شد مثلا دو شکل ایکی ببیند این آمدن نازل منزله، زهاب نفسی هم. دو تا گوشش برد، دو لستش بره دو پاش بره این دو سا اگر باهم نقصه روشن شد اشکال چی بود؟ اشکال بود که در بدن انسان یه قسماته هست که منافع نداره مثل موی آدم این دیگه اینطور دیست که اگر موی انسان را منافع خب اینسان بگیرون مو هم میدونی این مشکل هم دارد از شد،, شد این مشکل خاصی هم دارد آمدن گفتن ما بیاریم یکی منافع یکی جمال مو در جمال ما روشن, شد روشن شد. آیا در ذهاب جمال هم چیزی هست یا نه؟ ازده ایشان رو بودن چون جزو منافع نیست ازده ایشان رو بودن نه مثلا حکوم هرچی در داد به, به حکوم حاکم باشه هرچی در چیز داده شده هست. از امیر و مرونی نقل کردن در کوفه اغناف هم قائل بودن هنابله هم بعد قائل بودن که جمال هم مثل منافع دیگه کامله این نقطه شوشن شد پس صحبت در حقیقت این بوده که آیا زهاب جمال مثل زهاب منافعه زهاب منافعه مثل زهاب نفس گرفتن ادهشون گفتن نیست ادهشون گفتن هم وقت یکی از اهم دلایلی که اهل کورو بشتم از سویتون که همین خیلی که به امیر و مهم نسبت داده شده این خیل جمعه استفراد داره و جمعه قضایی داره ازها به برای تأکیل است. طرحت و حضم همین مطلب رو به امه ارزه داشتن به چه لغتی ارزه داشتن خوب به قطعه این ظرافت های کاره به این معنا که این را آمدن از اون صورت قضیه خارجیه او یک ماده قانونی تبدیل بکنن اون ماده قانونی که فیزه ها به شرد سوال املا بود. دیگه بود توش آگوشت بود این آگوشت رو سره که تیری دیخ... ش... باردن اونجا اونجا اونجا داره داره که بله فزهر شعرو فخصمون فیداله که الاعلین فعجله حسنه یک سال ازش فرطب دادن که سوزهش رو طبانه سر کرده فرصت یک سال در اون زمان روی این بود میگفتن ممکن از این و در و سول سال مختلف تأثیر بکنه این مختلف باشه کیا باهار هم بگذاریدینی موش در میدن تو زنستون هم تو پاییدن چون نسالت ها مختلفه ممکنه یکی موش توی باهار بریاد یکی ممکنه توی تابسول در بریاد با اختلاف و برای موی او اثر بکنه این یک جا دیم احتمال هم یکیش این بوده که بیان فسول مختلف و تأثیرشو ببینن اون وقت این قضیه این قضیه با هم تبدیل بشه به تبدیل ماده قانونشی نشه رجل سال بره هم همه ماهنه ما ها رنگ خیم تایی تو من به بقیه کار ندارم موی سرش جمع میشه مچالب میشه فلا میم بود در نمیاد به عبارت ما در اصطلاح هموزه ما پیازه ها میسوزه پیازه مو میسوزه دیگه در نمیاد سوال قال علیه دیه یعنی چی؟ یعنی ذواب جمال هم مثل زهاب منافع مثل ذواب دادن نه این علیه حدی یعنی این. اون اون که میگه علی حدی صاحب دین ذواب جمال مثل ذواب منافع این روشن که پس این, ات... این روایت که در حقیقت آمد برای کسی این سند این روایت الان ضعیف متاسفانه مردوم کلنی فقط دهنی روایت اکتفا کرده لكن سند ضعیفه که به مرحوم شیخ توسی در کتاب تحذیب که سندش رو الان میخونیم ایشون این جوره حال قال تو و لعبی عبدالله علیه السلام رجلون دخل الحمام فصوب به علیه ما انهار شعر شعر و رعسیهی ولهیت خلایم بود قال علیه دیه این که دارگرده این سوال اولا در کتاب مرحوم کلینی که سند زریف بود داشت فیمتعه تو شعر و رأسه ما اینو دیگه تفکت بکنیم احما که یه نسخه سهل ابن زیار ضعیفه سر زر تعبود نیست این بزرگان قب نگاه میکردن که این سهل ابن زیاد حدیث روی که این خوابش کرده این مثلا بوده شعر و رأسی ورعیت ورعیتش اختتونسه سهل ابن زیاد خبش همه؟ سهل سهلیه اون زعیبه زعبش هم صحره. خیلی عجیبه بعد داره در روایت سهل داره پلایم بود تو روایت شیخ فضا تو ابدا یعنی نکته اینه که اصلا در نیاد نه اینکه فضا بود این با همو تضاد می هم میخوره یعنی کلا در روییدن مویی این بخته اینه باذخرد نمی شه تو ابدا کلمه ابدا هم از کتاب سر سرلب بن زیاد گرفته چون هی ما میگیم مثلا نسخه نسخه مرحوم احمد اشعری این هم میکرده که سهل دروغ گفته. این دروغ نیست. که خبری هست. که مخبری نیست. به نظر ما شهن سهل اگر دیگه دروغ بگه. مشکل سهل همونیست که نجاشین گه. زنی پنفل حدیث. احتمالا سماع نداشته. از نسخه بازاری استفاده کرده. از نسخه بجاده استفاده کرده. ببینه الان برای شما یه حدیث رو صاحب سای بود همارم بود. بود نسخه سه باید نسخه سهی مقایسه سه کردی چقدر دهازه ده حقی ده فرم کنه تو نسخه سهر بود سمتعت شعر و رأسه اینجا بود سمتعت اونجای همتعته بود اینجا بود سمتعت شعر و و ولهیته یک ولهیته زیاد داشت باز در اونجا بود خلایم بود در اندازش خلایم بود و عددا همینم هم درسته نگاکنی؟ فنا موی سبادو یه جور میشه کلیه فرامیشه خب این معنی میشه ناظر یعنی باز کاری بکنه قاضی بدونه که اصلا در نمیاد در اونجا یه بار فرصت داده حالا ممکن هر هم بگم باز موه شده صد <تصفيق> دفعه قید موافقه صد ورده عالی درست بله <تصفيق> می می این یک طرف دیگه نادره. می قراره میخونم اینجوریه. این یک طرف دیگه قضیه... رو نشونشو براتون. از طرف دیگه قصه همین روایت با همین سند تقریبا در کتاب تقی هست. قلتو داری عبد اونجا که روایت تهذیب حمام داشت. یه دیگه حمام نداره. رجلوا صد ما انهارن على راجل این علاوه بر رجال نسخه از اونجا نیست سمتحت شعروه اینجا شعروه داره ممکن است شعروه رو به رعز بزنیم یعنی شعر ممکن از ممکن است شعروه رو به رجال بزنیم یعنی موش اصلا در نیمه و دیگه اگر گفتیم شعروه با تمام بدنش موی سر و ریش و بدن شعروه اینطور دیگه بدن باشه یعنی نه قائله آب ابدا کلی چون برای یه بدن پوشیده است ممکن بقی بدن بسوزه اما مو کنده نمیشه و اصولاً چون نقطه بحث جمال موهای بیر لباسی جمال حساب نمیشه پس اگر گفته شعر او یعنی شعر رجل بازم مرادش شعر ویش واهمه پس بلا مردی روشن شد که این فلایم با تو ابدن این عبدن هم اینجا داره تو نسخه فقیق داره و به عبارت سانیه ما الان سه نسخه از این روایت داریم البته اون روایت منوز یکی باش اونجا علی ابن حدید یا علی ابن خالد هم دردار جالیبی بود این روایتی ای که ما داریم در نسخه فقیق و تحضیق به اصطلاق دو نسخه یکی شعر و رأسه این مال کافی یکی رأس رجل سمتعت شعروه این مال فقیل یکی هم مال مرغوم توسی تمتعت شعر و رقصی و سه ستا مضمون مموشنی دو سه ستا مضمون الان سه مرم داریم این بحث مرم نمایات قدر رو شکید دارم تو این جهازه. الان سه مرم ما در اینجا داریم, داریم. اینه چیجور تحمیل بکنیم الا ادام کهی کهی یک بحثه تلوی کعب بوده شکیش هم زغال کوی آخوند یو تلوی کعب بوده که فرمودن این روات که داره شهر و شهرسی که میذین بشرس واضحه از این ندارم این جنگ رو من توضیح میدم اون روات هم که داره شهر و رأسی ولیهیته چند صورت روات تاکونی لحیه به تنهایی آمده بود پس لازم رأس پس هم به تنهایی دیه رأس به تنهایی دیه آیخو اینجور این خسلانه ما اسمه این جمع تعبودی یعنی این روایت هم حجت اون روایت هم حجت ما چی جمع بکنیم کاری در مقام شم این جمع ما اول معتقدیم یکی واقع گرایی، بکنیم تفسیر، بکنیم چی بوده چی شده چی داشتیم یعنی چی؟ کار به تعبود تحبود به مهربت صرف این اختلاف از کجا آمد؟ چی بوده؟ مطلی چی بوده؟ امبدا روچند شد که این مطلی از قبیل روایات عرضه یعنی چی؟ یعنی آنه خدمت امام صادق میخواستن سوال بکنن مطلبی در گفته به همیورمومین نسبت داده شده؟ روبات اهل سنت به همیورمومین نسبت نه، آبزاغی موسیقی سیختش رو این طور شده؟ آیا این درسته؟ سوال هم به لحاظ فقهی این بوده آیا ذهاب جمال هم یه داره مثل ذهاب نفتان ها فقیل خوب دکت بکنی لذا سوال رو آمده هم ترکره بعد از تبه ما انهار رن هم همون سوال انیور محمدین همه خواهی نکته در بیاره نکته چی زهابش ما به بقیه کار نداریم روی پوست صورت چیکار کرد پیشانش چیکار کرد مثلا لبه ها که کار کرد با اونا کار نداریم ما سؤال اون سرزه ها به شهره این اصل مطلب اما این نسه ای که داری ببینید مرحوم شیخ صدو وقتی روایت نم مرحوم کلینی به ترتیب تاریخ دروبی مرحوم کلینی نسه سر و میراز سر قدرتیش شده سهرم از کردیم به حال این مشکل روایی داره که مثل احمد رو از خم بیرون جرد به مشکل سیاسی به دخل اینکه شهد علیه به کذب و قلوبه افراج من خم که عادی نیم نجاشی هم قبول داره زعیف و حدیث به نظر ما هم زعیف و حدیثه یعنی به عبارت اخراب به عبارت اصولی ما زعف کذب خبری داره کذب مخبری نداره دروغ نمیگه شخصش از د 90 تا رو کله در, در کاپی از کرد. انسان درو که شید عجل از تس... مثلا ما تصور دورو من خود من رو میگم میگن تصور اینکه سهله نزیاد درو بهقدر رو نمیکن امچان بک رو گ. اون دیده که ما تصور میکنیم ایشون چون مبنا داشته که به نحرو به جادن میشه نقل بکنیم. مشکل نداره نسخه بازه. نسخه نقص اون نسخه بوده مشکل تو نسخه بوده تازه خودش هم میگه علی ابن حدید که این خودش مشکل داره یا علی ابن کار داره این بعض رجال عبدالله این نسخه اینقدر مشکل داشته محنیکیشون که تندش هم مشکل داشته به نظر ما نسخه سهل زیاد سه که داره این ما رو سهل ابن زیاد تلاز پرمسن یعنی تا شهر و رأسی این ولهیته هرسی شده بود، عبدن هم حضب شده تو مرسنش هم خراب میداره این که به نظر ما مال سهلیم زیاد این کار به لاحاض تعبد هم که عدل تعبد نمیگیرد این که حاله به این میمونه این دو روایت حقیق چی گفته روا جعفران ندشیر این جعفران ندشیر جد و اجلای از خوابه فوق العاد مزرگوار این از این کسانی گفتن که لا یعذبی لا یعذبی الا اصلا بالاتر از درد ناربیه چون هم از اون درد این دو طرف چون مرحوم رجی روحانی استقاد و روحن چون هر کی از این ال می ایشون از هر کی نار می کنه ثقت اصلا بدیهی ما فقط نار نجاشی فقط مقام اثبات اون هر کی اون هست نفی و اثبات هر نگم لمگر و انها الاسکتر و لمگر و الاسکتر گم رواهان استماد یعنی جهبر نوشیده مرد بزرگواری اصولا هم اساسیدش و مشایخش بزرگوارن هم کسانی که از ایشون نکلوار نرار اجازه داده شد. اجازه کتاب مهم بوده به بزرگان اجازه داده به منتفر اجازه این مراد اینه نه این که هر کسی هر ممکن است یک انسانی ممکنه از این انسانی کذب یه نیست که از هر کسی که میخواد نرو کنه صدا باشه مثلا کلام نجاشی نفی و اثبات نداره اثبات و داره هر ص مبتنی بر نفی و اثبات بدون نفی اثبات که هر اثبات نشه خب جابر بن بشیر بسیار بزرگ ان یه نکته ای در اینجا البته بحث ما نیز اینجا روایت چون گادی اوقات اونم میخواد که توی کار فقهی وارد بشن حالا کار فقهی سن وارد به یی ممکنه به این مشکلات برخورد بکنن وقتی کار فقهی هستون وقتی این دو فهرست معروف ما نجاشی و شیخ گاهی به تلخی از مشکلات برخورد میکنیم خوب دقت بکنید و هر جای خودش داره این که در جامعهشناسی یه مشکل خاصیه نجاشی 3 تا 4 کتاب بهشا نشر داده بوده کتاب مشیقه ابتدای صلات داده میشه بعد هم گفته دارم اون نوازه یک نوازه هم به شمس را بزید سه چهار کتاب دو طریق هم برای ایشان نهرده نجاشی خوب دقیق میکنی شیخ که اسمشو بازه جلقه ببشیره و جلی گفته لغو کتابو این خیلی عجیب یعنی این سوال به ما میاد کی این در تهرس شما چه این تناغذ هست شیخ گفته لغو کتابو اما نجاشی پن منش شیش دو کتاب به شمس و شواهدش هم نشون میده که موجود بوده چون میگه کتاب المسیخه مثل کتاب ازن لانو از عسكرونه این نشون میده که اصلا کتاب هم موجود بوده در حاضر ایشون دینی سحش رفاط مرحوم جعفر باشی شخصیت اجتماعی داشت ایشون حتی جایی که معمول بعد از هزار نزد یعنی هم نشینیش با جعفر بن باشی اگه این باشه که خیلی رتبه اجتماعی بالایی لشکر و تشیبه بوده اللله غالبا رسیدن شفیعه و یک خطا خاصی داشته باشه به این مرد بزرگوار اهل اهل زهد و ورع و فرط تقی نیست فقیه و مولا و راوی و خیلی جای امتیاز مثبت زیاد دارد میگم گفته شده که هر که, ایشان هر که از ایشون نغری بکنه سرش اجازه از دین نغری بکنه هست از دین هم بالاتر این هم درباره جعفر بن بشیر از کسانی ذراحت مش گفته شده حالا دقت بسازید این یک نکته است توی کتاب فهرست شیخ نجاشی هست تو تا تعجب بگو نجاشی قائش چه کتابی حساب بده به عجب چون من از گفتم که لاخ کتابون این ظاهراً نوشاه بوده کتاب اصطلاحی نبوده چون اسم ایشون از شهوت شیخ گفته لاخ کتابو نجاشی قائش کتاب بشه داده این چه جوریه این قصه چی حله قصه اصلا بحث افتو در روایت ندارم میخوام این که این در سهم بوج این آقایون دقت نکردن نجاشی اصلا حواسشون جهر بوده نجاشی دو طریق به کتابش داره هیچ کدومش با طریق شیخ نیست اگر اون طرق رو بحث میکرد الان با ما اوزه ما بحثای فهرستی وقتی بحث نداره که ما مفصله متعرض شدیم شیخ از کتاب فهرست ابن الولید نروم کنه نجاشی هم همین فهرستیشش بوده نجاشی اینجا همه نمی خیلی عجیبه من به نظر نجاشی اینجا احتمالا در کتاب فهرست نویل همین طور بوده. و کتاب جعفر بن بشی اخبار علی فلان از جعفر. به نظر من در ثنا در... مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی علمی قوف که نظرا اون فهارسی که پیشون بوده از اون فهارس استخراج شده. این خیلی ظریفه، واقعا انسان ماخ شده که چطور این بزرگان ما با این دقت و ظرافت متفید این کار شده. نجاشی دو تا طریق هم داره فهرست ابنالوری در بیشیش بوده حاخیلی هرچیده از این فهرست نه همون میخونه از این دو طریق پنج تا کتاب بشنسپد میده به نظر من نجاشم اشتال داشته به احتمال قدی من اینه چون بعید نجاشی پنج تا کتاب بشه ایشون یه نبشتال داشته باشه احتمالا فهرست ابنالوری اینجا قلط بوده لهو کتب کتب جعفرم نداشی نه کتاب. اگر ما بودیم اون نسخه فهرستوری اون دوستا دستکاری می‌کردیم چون من از کردم آقا این بنوشین که برگردم به شیخ و نجاشی به کلام ما نشو بنویشه و عکس کاری بشه که شیخ و نجاشی اتفاقی رو بگم چون اینا مثل بقیه نکنه به نظر ما حق با نجاشی است و عبارت برکت ابن ذری چه حس چون چه که بغداد و اردمال ابن روی هم چیز داشتن نجاشی حدو مشترکه استاد اینا یکی، نسخه دیگه از دادن بعدی جوان دوست که با من خیلی که هنوز هم نهانیم یک شواگر یه جشن جدید تو دست تهرسی مجاز شده دکتر میگه این واقعا اگر احتمالی که من می میام درست باشی چقدر کار که در این مورد از باتش متحیر میشی با این که امروز پیشش ویدیو اولین ویدیوی روی میکنی در تهرسی امروز کتاب و جعبه در دوست تهرسی دیگه موجه خوشوکه دیگه یار خوشوکه ولی من فکر میکنم متأسفانه نسخه فهندس در اینجا غلط بوده ثواب اون نسخه اینطور باشه کثو و جعفر بن ناشی مثلا حالا وجود داشته و اگر اجازه نداده که داره مال ابن ولیده اجازه رو بیان. علت اینکه داریم دارن دیگه حسابو اشتباه. خب اشتباه نیست نه. استادش مشه... این در اجازه این یک نکته ظریفی بود ها. البته هر کلا این فهارس، تو این دو فهرست نکات زیاد داره. یکیش اینه. به نظر ما اگر دقت میکردن نجاشی و شیخ مصدرشون عوض کردهن. و به نظر ما هر با نجاشی است. به نظر من ش مختصر بودیم که گ هم دا می هموازه چون جاییش می. و به نظر من نسحهام ولی خا داشته. به نظر من کتب بوده. یه شاهده هم من دیگه دارمم که کوم بحثلا نمیخوام واده بم تو خیلی دی شما رو خارج میکنه. فقط میخواستم این نکته رو به شما ارعرض بکنم گاهی در مقایسه این دو کتاب آیان به مشکل بر میخورند. اونها بالا حل علمی بشه به مجرله حمله کردن به شع به ننجشی، این مطالب حل نمیشه این راجعه بدین روا جعفران و بشیر انه هشامه و نساله که سقه و بزرگ احتمالش قبی میدم از همین نوادرش باشه نوادر جعفران چون از ایشون کتاب بنامه جنایات و دیار ننگشته چون کتاب جنایات و دیار نداره احتماله همین کتاب نوادرش باشه ان هشامین سالم که از اجلای از خوابه ان سلیمان ابن خالد اقتر در موقع ترکتی که دستش بریده باشن چون زیدی بودیشون بازی در قیردفی ها مسلحانی زید شکر و خود والی کوفه دستش برید با شیز از دست این سلیمان خالد برید قضا یک دست بود سلیمان ابن شیعه شد از زیدی برکتر شیعه شد امامش شد آن قلسل عبی عبدالله که خوند. و خوب دقت میکنید مرحوم شیخ صدو در مشیخه خودش که تاریخش رو به جعفر بن بشیر نوشته نوشته که اینو که من گفتم از پدرم از سعد بن عبدالله الله از محمد بن الحسین ابن عبد الخراط جعفر تحلیل تاریخی جعفر خودش اهل کوفه است این محمد بن هم اهل کوفه یکی از روات معروف جعفر را این نسخه ای رو که مرحوم ازش نوشت نه نسخه سعد بن عبداللهه حالا اسم نسخه سعدر این نسخه سعد بن عبدالله اینطوره صادر بن عبدالله کوفه رفته کتاب جعفر رو به نسخه نبل خطاب گرفته پس در نسخه سعد بن عبدالله دقیق این خیلی در کل روایات شیعه خیلی من در نسخه سعد بن عبدالله این طور بذاره تعت شعرو اما به این شیخ توسی این آقای کنی گفته اونجا اونجوره یا غیر قبل از آقای کنیم گفته شیخ توسی این طور بفته محمد بن حسن سفار سفار ان محمد بن حسن ان جعبر بن من چیزی شیخ تو از کتاب دیات تصار گرفتیه. پس یه عتلی بر شیخ صدوق نیست. شیخ صدوق از یک مصدر معروفی که به حالا یا می‌خوره به کتاب سر چون سر کتاب در دیات نداره. سر پنج کتاب در دیات میشه نداره. کتاب رحمه دیات نداره. یا میخوره به کتاب های محمد ابن حسن دیگه یا میخورد به جعبه یکی از ما باید بخورد چون شان صاف کتاب دقت کردیم؟ چی میخوام عرض بکنم؟ زرافت کار روشن شد؟ پس این نه اعتراض مثلا در جواهر هست بعد خوی هست با نسخه در تحضیب این طورت در فقیه این طورت چیکار کار بکنم؟ این آقا روشن شد اصل روایت یکیه والسليمان بن خالد به احتمالاً مصدرش کتاب جهزره اینا خیلی زیاد کرده کار نسخه ای که شعر نقل کرده هم تحت شعر نسخه ای که تبار نقل کرده هم تحت شعر و رأی و لبیته کس نت صدوقو زین قصه مقصر بشیر فضتی و قاتر چه کار باید کرد بله خیلی کارش بکنی ببینید مرومه نجاشی در شعر حال مرومه سفار اینطور میگه سر جلیب بعد میگه قلیل سرقه سرقه خیلی لطیفه. یعنی روایاتش کمی نداره خیلی آدم دقیقیه حالا تونسه سد بود شعرو تونسهشون بود شعر رقی علیهیته این آدمی دقیق روایاتش به قرآنید چقدر ظرافت کار نجاشیه اون مثلا در از اجایب کار مرحوم کلینی خیلی کم از و احکام داره بسید اینشه گفت نداره معذر هر وقت شما رواید بیدن اولش محمد از حسن نیست؟ از منفرد شیخ توسی با میتونم چرا روایاتشم بد نیست نمیتونم چون کلی نرمه. همسی کلینی از شفت دیمان محمدان نه نموستن بحثی کنی همین صفار یه قومی دیگه یه که معاصر اینه اونم قومیه اونمت تا حالا اینجا روشن شد براتون دو نسخه از روایت جعفرم نبشی تو قوم آمده هر دار قومیه پضای قوم براتون روشن شد در نسخه سر فمتعت و در نسخه سفا فمتعت شعر و رأسهی و یکه آیا ما اینجا چه کار بکنیم دو تار روایت هست پس مرحوم صدوقت آمده این که میرا تو قوم مقابله شده اینه که از بکن برمون آیا مرحوم صدوقت چرا نسخه سعد ترجیح داده آقای آمدن به این عبارت با عبارت تحقیق مقایسه کردن گفتن اینا با هم فهم آیا این واقعا فهم بکنه یا در ذهن صدوق دونه که دوسته یکی هم هستن چه مرحوم کنه هم تعد شهر یعنی هم تعد شهر رو اتی بوده حالا چرا اختلاف فیدا شده؟ شاید ایش از که ها محمد نحسن نگیشم از دو خود جرده ما نمیدونیم ما, ما از شیخ و صدوق ردش کردیم باز اون تو گیر کردیم آتا حالا آقایی تارید صدوق و شیخ گیر کرده بودن ما از صدوق و شیخ رد کردیم من هر دوشون مقصر نیستن مقصر نسخه استید حالا گیر گیرد بحث دیگه، بحث که آقای واقعا نصر مختلفه یعنی واقعا چیزی بوده که واقعا مضربه به حکمه که بیان بگیم آقا این نقل اینجا، اینجوره، این نقل این من اصلا بحث ما که این بحث نبود این بحث داشت این که تو ما زیار از تو حدیث ما خیلی لطافت، این رو به شیخ هم بگردم نه این نیست، نه سرور حدیث کتا کرده، نه شیخ حدیث بنده کرده این دو نسخه در قم بوده قبل از صدوقم بوده هر دو نسخه قبل از صدوق نسخه سر دو نسخه سخبا به ذهن ما صدوق معتقد بوده این دو نسخه یکیه فرق نمی کنیم خوب به ذهن ما این از که صدوق فتح میکرده این دو نسخه یکیه فمتعت شعروه با فمتحه شعر و رسی و لحیت یکیه حالا شاهد ما چیه؟ میگم جای که در کتاب مبنه شیخ صدوق این تو دارید و عبدالله شامب نصاله اشتباه اینجا سلیمان بن خالده حالا این چطور شدید دارن نصالی دیگری بوده که این خطا تو آمده انرجلم دخل اله حمام به علیه مَا اُنْهَار ببینید دخل الحمم به علیه مَا اُنْهَار دقیقا نسخه فقواره یه <تصفح> خیلی عجیب سگو در کتاب فقیش نسخه سعر رو برده چون در نسخه سر اصلا دخل حمام نداره تو نسخه صفوار داره مقارنه خیلی عجیبا باید بعضی نوقات با اوقات صدوب در حد اجازه خواهد شد. واقعا در حد احجاز, احجاز باید چقدر این متن است کلمه سلامان خالی کفتگی از مصبت دو بشه در کتاب مغونه دقیقا متن تقویر رو بوده در کتاب فقیر مطمئن سرزم عبدالله رو بوده ببینید فصوب به علیه ما اونها علماتی اینجا ببینید نصف هم ترته و هم, هم ترته هست شعر و رأ توی مغنه شعر رد کی بله و خلا یلا یم مت ابدا قال علیہ دی نش واقعا در حد شماز اینا چه کار میکردن صدو چقدر مقید به واقعا برای ما الان در حد تعجب آورد شکو صدوق با این دقت دو تا رو نقل کرده نسخه صدو در کتاب صغیر آورده در کتاب مغنه به استثناء انشول اینان خاله سعد سلیمانو خواهش توی راستیشان افتاده وانده نصه سفاره مطمش دقیقا نصه سفاره به ذهن ما اینطور میاد که صدوق فهمش این بوده که اون روایت مورد زهاب رأس و لحیه این لازم مجموعه یعنی مراد اون آبداد ریش و کلن بود اون آبداد معزا مولک کلا بود موی سر و موی ریش با هم شاید ورشیشی هم باشی هم ریش و هم سر هر دو زینت محسوب بله شاید اورش همونه این کازه که این چقدر ظرافت این هم راجع به این روایت پس خوب روشن شد که البته ما گیر کردید نه که ما تونستیم روشنش بکنیم روشن روشن بکنیم ما هم الان گیر کردیم که اختلاف سفار و سعد از کجاست؟ لکه به ما آمد که مشاریخ قام هر دو رو قبول کردن فقط اون نسخه کلینی رو قبول نکرد نه شیخ سوسین قبول که نسخه سر سعد شده سر زعد و روشن شد چون من اعرض کردن مطالبه که در رجال میکنیم یعنی در فیر در حدیث تقدیر بکنیم اما برای شما کاملا روشن شد که نسخه دیگه شما تعبط نموگیم به هرکه نجاشی نسخه سه گیر داره این یا باید شعروح باشه یا شعروحی به لحیفه باشه و هر هم یکیه اما شعروحی تنها می نیاییم اشکال رو هم رو مرگومه سهر بکنیم به احتمال قبی مبانیشان ضعیف به احتمال بسیار قبی مبانی حدیثی مرحوم بهسا طهرندزیان در این وقت تمام شد و لا بازی نکرد دیگه می تمام شد